بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قبته إلا بالله العلي و العظيم ﷺ و محمد. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. سیما بقیت الله فالسماوات والارزین عوض بالله من الشیطان الرجيم و من خطبت له عليه السلام تسمن قاسعه وحیت تزمن و زم ابلیس لعنه الله الستکباره و ترکه سجوده لآدم عليه السلام و انه اول من ازهر العصبیه و طبع الله همیه و تحذیر الناس من سلوک طریقته عرض سلام و تهییت خدمت بزرگواران برادران و خواهران بزرگوار و خوشبخت از اینکه توفیق دوباره حضور در جمع شما عزیزان و حضرت باری تعالی رفیق فرموده است و اون هم در مناسبتی که منعقده به نام سیدت نساء العالمین صدیقه کبراه سلام الله علیه است الله این توفیق دست می‌دهد که در این ایام در محضر سخنان نورانی امیرالمؤمنین در نحج البلاغه باشیم آنچه که سهم و نصیب این نوبت ماست که انشاءالله الله در این ایام آغاز میکنیم و تا به جا که فرصت باشد ادامه پیدا خواهد کرد شرح و بیان خطبه ایست از خطب امیر المؤمنین که نام این خطبه وضعیت این خطبه شرایط این خطبه حالت ویژه ای دارد اولین نکته‌ای که باید درس کنم قبل از ورود به خود خطبه این که این بیان رونهانی و لطیف را که میتوان گفت اد اول و فی نهج البلاغه طولانی ترین خطبه در نهج البلاغه امیرالمؤمنین است قبل از اینکه مرحوم سیدرضی در نهج البلاغه گردآوری کند و بنویسد بزرگان دیگری بودند قبل از ایشان که بخش های عمده این خطبه را در منابع و کتاب های خودشون نوشتند من جمله در دو کتاب از کتب اصلی و عربعه شیعه ما بخشهای بسیاری رو از این خطبه گرانسنگ میبینیم یک در کتاب کافی مستطاب کلینی که مرحوم سقط الاسلام کلینی بخش‌هایی از این خطبه رو در کتاب کافی آورده است قبل از سید استهزار دارید کلینی در اصر غیبت سقرای امام زمان اقدام بنوشتن کافی و کتاب کافی مستتاب می کند در کنار او مرحوم صدوق شیخ صدوق الله مقامه شریف در کتاب ملا یهزره الفقیح ایشان هم در این کتاب بخش هایی از این خطبه نورانی رو بازگو می کند و می نویسد از میان اهل سنت زمخشری جار الله زمخشری این مفسر طوان و این عدیب فرهیخته در ربیال ابرار بخشهای عمدی، کتاب ربیال ابرار بخشهای عمدی از مجموعه این خطبه رو می نویسد و بازگو می کند. یعنی قبل از آن که مرحوم سیدر از این خطبه رو در نهج البلاقه بنویسد در مسادر پیشین کاملاً این خطبه روشن و مهرز بوده است ارز کردم که نام این خطبه شریف خطبه توسمل قاسره نام این خطبه خطبه قاسعه است نام و عنوان نشان می دهد که ویجگی در این خطبه وجود دارد. کلمه قاسعه از ماده قاسره قاف سادرین صر دو معنی عمده در این کلمه وجود دارد یک اون حالت ابتلا الماء والبور هنگامی که بنا دارم دقیق واجه را بگم استهزار داشته باشید هنگامی که یه حیوانی غذا را آب را مخصوصا را دانه را یا خوردنی خودش را غذا رو می‌خورد، بَل می‌کند، بر می‌گرداند، بَل می‌کند، بر می‌گرداند که از آن در فارسی تعبیر به نشخار می‌کنیم. نام این حالت قس است. قاسه یعنی اون اشتری که چنین حالی را انجام می‌دهد و چنین رفتاری از او سر میزند قاسه به این معنا این معنای اول. حالا چرا این خطبه را قاصع گفتند؟ پاره‌ای از شراح نهج البلاغه مدعی هستند و میگویند که این خطبه که ارز کردم طولانی‌ترین خطبه نهج البلاغه امیرالمؤمنین است، زمانی ایراد شد که حضرت بر شطوری نشسته بودند و این شطور در حالت قاصا بود. و امام خطبه سنگین خودشون رو با همین شرایط سواره بازگو فرمودن و مطرح کردند گروهی از شارهان میگویند خیر نه این حالت نیست به دلیل اینکه امام در این خطبه موضوع اصلی که در این خطبه دارن میگویند بر می گردن باز به ابتدا این کلام باز مجدد تا انتها میروند تا ابتدا بر می گردن. یه نوع قاص رفت و برگشت زیبایی در کلام امام دیده میشه لذا این خطبه قصه نامیده شده است این یه احتمال اما احتمال دوم که بسیار جدی است در اینجا اون همین است که قاص قصته هو ای سقرته و بهقرته هو ای زربتوهو و شتمتوهو هنگامی که در کلام رب کسی رو تحقیر میکنند به تعبیر ما می میکنند هنگامی که کسی رو مورد ضرب و شتم قرار میدهند این عمل رو قصع میگویند این خطبه قاسعه است یعنی خطبه است که میکوبد تحقیر میکند و کاملا شتم میکند چه کسی را چه چیزی را ابلیس را پیروان ابلیس را یعنی امیل المؤمنین در این کو سخن خیش آنچنان جدی و متنتن سخن میگوید که ابلیس را رفتار ابلیس را و تابان ابلیس را مورد هجمه شدید خودشون قرار میدهند این احتمال احتمال جالبی است که کلمه غص و قاصعه این معنا را دارد بسیار اما موضوع این خطبه با این ارج و طولی که این خطبه شریف امام دارد مرحوم سید رضی در آغاز خطبه توضیحی میدهد. من میگم ورز میکنم خدمت دوستان سید میگوید ته و زم ابلیس لعنه الله این خطبه امیرالمؤمنین متضمن است در دارد ذم ابلیس را پس موضوع این خطبه مشخص شد که موضوع این خطبه پیرامون ابلیس شیطان نقد بررسی و مطالعه رفتار شیطان و به دنبال اون مهمتر از آن رفتار شیطان صفتان در میان آدمیان است یعنی همین بنا دارد که در این خطبه تیف شیطانی را حرکت شیطانی را و جناح شیطانی را در میان انسان ها و مردم معرفی کند و بازگو کند جای گاهر. پس وحیت تضمن و زم ابلیس لعنه الله تکباری و ترکه سجود لادم علیه السلام الستکبارهی خیلی زیباست من این بحث و چون گاهی پیش اومده خدمت دوستان عزیز اشاره کردم حرز میکنم این سنت رو در موارد دیگر هم در خطبه های البلاغه گفتیم سنت براعت استهلال نمونه این رو همونجا که مطرح کردم در قرآن خدمت دوستان عزیز گفتیم یعنی اینکه یک گوینده اول تا انتهای کلام خودش رو در یک کلام خستین ابتدایی آنچنان زیبا میگوید که مخاطبان متوجه میشن کل مطلب چیست اما به اختصار و به کوتاهی در ادامه شرح و بیان اون رو بطرح میکند اینی که عرض کردم خدمت دوستان قبلا که ما چنین چیزی را در قرآن در سوره مبارکه ی حمد مبدعی هستیم یعنی شما باز می‌کنید کلام الهی سوره الحمد را سوره مبارکه ی حمد رو که باز میکنید و میخانید گویا خداوند هران چه در طول 6200 و 36 آیه قرآن بنادارد که بازگو کند در سوره مبارکه ی مطرح فرموده است. یعنی شما میبینید سیر وجودی انسان رو با از و جلال الهی با همد و تمجید و خداوند ونگاه این دنیا اون دنیا سراد تقسیم جایگاه انسانها یه سیر کلی از تمام ادوار زندگی بشر رو در سوره مبارکه حمد میبینید که اساس قرآن مبتنی بر اینه خداوند میآید در قرآن جایگاه خودش رو ارتباط انسان با خود رو منازل متفاوت انسان و انتهای سرنوشت وجودی آدمیان رو در قرآن بازگو می کند. یه فشورده هر آنچه به گفته بشه در سوره مبارکه همد می بینید لذا به سوره مبارکه همد همان گونه که خداوند در قرآن میگوید سب مسانی گفته میشه که معادل با کل قرآن قرار داده شده ولی قطعاتی نیک سب من المفانی و العظیم. پیامبر ما به تو سب مسانی دادیم و قرآن عظیم دادیم. یعنی سب مسانی حمد، قرآن عظیم، کل قرآن. یه طرف حمد، یه طرف بقیه و مجموعه قرآن کردیم تصور بفرمایید. به اینجا هم بیان همین طور است هم سید چنین کاری رو انجام می‌دهد سید رزی هم خود همیر المومنین یعنی براعت استحلال تمام موضوعی که در این خطبه طولانی طولانی با حجم بسیار بالا گفته میشه همون آغاز کار مشخص میشه که این خطبه خطبه است که مظمت ابلیس را در بردارد لعنه الله الاستکبارهی بر استکباری که ابلیس نشان می دهد. و ترکه سجود آدم و اینکه ترک می کند سجود برای آدم علیه السلام, و السلام رو اینو من چون در های بعدی توضیح بیشتر میدم فقط اینجا ترجمه می کنم. و این خطبه در بیان این است که اینهو اولو من از هر العصبیه. امیر المؤمنین بنا دارد معرفی کند اولین کسی که اسبیت را آشکار کرد ابلیس بود اسبیت از همان ای که تعصب گرفته از عزیزان رین ساد به هر کجایی که به کار برده میشه به معنای شدت پیوستگی به اون مجموعه ای که در بدن شما تمام این بدن رو سفت و می میکند به هم متصل میکند عصب میگوییم به اون جماعت متصلی که ولو بر باطل پیوستگی دارن و متحد با همند دست از هم بر نمی دارند اسبه گفته میشه ان الذين جاءوا بالافق اسبه منکم سوره مبارکه نور اسبه یه جماعت پیوسته متصل به هم مرتبط با هم حالا اگر اینها پیوستگیشون بر خیر است اسبهل خیر اگر بر شر است اسبهل شر این پیوستگی و تلازم رو به شدت و وابستگی رو با این واژه تعصب هم همینطور یعنی وقتی کسی به شدت بر یک مسئله اصرار ورزی می کند بر یک باطلی اصرار می کند تعصب بر باطل بر خیری تعصب بر خیر و گاه عصبیه که در جاهلیت به کار برده میشد شد الارد وقتی کسی فخر می به یه چیزی و به شدت پایون می ایستاد این رو عصبیه می گفتند امی اینجا مرحوم سید میفهمد ابلیس کسیست که اول و منعظهر الاسبیه اولین است که عصبیت را و اون ورزی و پافشاری بر باطل را نشان داد ابلیس حالا در ادامه میخوایم. و تبع الهمیه و ابلیس اولین کسی است که تابع همیت شد اجازه بدید این واژه را هم یه کلمه توضیح خدمت دوستان بگم حمیه همیمیه هر کجا که به کار برده می‌شدد داغی دل شدت حرارت جدیت زیاد کما اینکه به طبع حما گفته می شود وقت اون داغی تب میاد 39 درجه چل درجه وجود انسان رو می گیرد این همه است. به چشمه های آب گرم همه گفته میشود. به دوست و رفیقی که در دوستی داغ و شدید است همیم گفته میشود. تمام استعمالات این کلمه اون داغی و شدت رو می رساند. خود این واجه تبع الحمیه یعنی اون شدت داغی گاهی ما در عرف فارسی عامیانه خود میگیم اینا وا چقدر داغه یعنی چرا تو این مسئله چیه خیلی افراتیه خیلی تند داره میره میگیم آقا داغی است گاهی اینطور به کار میبریم این همونه و تبع الحمیه وهیت تتزمن و این خطبه دربر دارد مذمت ابلیس را استکبار ابلیس را ترک سجود او برای آدم را و معرفی ابلیس به عنوان اولین متاسب و اولین کسی که بر حمیت و حرارت این چنینی پافشاری کرد و این خطبه متزمن از تحذیر ناس من که طریقت الله اکبر و امام تمام شدت خودش رو داره در این خطبه میورزد که مردم رو تحذیر کند هشدارشون بدهد برحضرشون کند از اینکه که مباد مسیر ابلیس و شیطان را طریقه شیطان را تیک کند و این آتش به جانشون بیفتد آنگونه که به جان ابلیس افتاد پس بنابراین آنچه که ملاحظه فرمودید به عنوان اون آبلو و عنوان اصلی این خطبه گردآورنده آورنده نحجل مرحوم سید رزی اعلال مقاما شریف بازگو می کند ما این خطبه رو تمام حول محور شیطان ابلیس و رفتار شیطان و شیطان صفتان مطرح می کند و بسیار امیق عزیزان این خطبه شاید 17 بند داره حالا ما انشاءالله به مقداری که در این حیام برسیم خدمت عزیزان بازگو میکنیم و عجیبه یعنی این خطبه را اگر کسی واقعا به جد بکاوت بخاند بداند دیگه خیلی از مسائل و تحلیل های اعتقادی اجتماعی انسان شناسی برای وجود انسان محرز آشکار و باز میشه خب با این مقدمه ای که خدمت عزیزان عرض کردیم ان شاء الله دیگه به حول و آغاز میکنیم متن اصلی کلام امیر المؤمنین رو و سراغاز سخن الحمدلله الذی لبسل عز والكبریا. مشاهده می‌فرمایید که امام با حمد و سناه الهی آغاز میکنند باز هم من در سراغاز مطالبی که توفیق بوده است الحمدالله خدمت هزیدان ما اینجا کم نگفتیم از نهجل بلاغه بلاخره توفیق این بوده است منشور تربیت رو گفتیم نامی سی یک خطبه متقیم رو گفتیم بانگ رهیل رو گفتیم و مطالبه به لطفه الهی سنگینی از نهجل بلاغه خدمت دوستان در این مکان شریف مقدس در جمع شما بزرگواران گفته شده است اشاره کردم همیشه که امیر سخنی رو که شروع می کند همیشه قهران و قطعا با نام الهی حمد و سنا خداوند و حتی درود و تهیت بر نبی مکرم خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی است اللهم صلاحنا محمد اما مرحوم سید رزی به دلیل اینکه که بر اقتصار و کوتاه کردن کلمات امام داره در بسیاری از موارد اون خطبه اول یعنی همدوسن های اولیه یه سنگین امام رو دیگه نمیگه اما این رو کسانی که بعد اومدن بعد از مرحوم سید و بناشون اون بوده که یه خطبه یه امام رو گزینش نکنن از اول تا آخر بگن اونا نوشتن ما استلاحی داریم به نام مستدرک و نهجل بلاغه مستدرک یعنی چیزی که باقی منده است یک کسی اومده چیزی مجموعی رو اینجا جمع کرده رفته چند قلمش مونده شما این اقلام را برمیدارید نام این استدراکه نام این استدراک مرحوم شیخور را حاملی. رزوان الله تعالی علیه در جوار مرقد و مزجه تابناک علیه ابن موسیم میرید احترامی به این مرد میگذارید به حقی که بشی ادارت دارد اومده وسائل و رو 20 جل نوشته به حق کار رو تمام کرده از حق و در زیبایی و شکو و مجموعه ابواب مهم فقهی اخلاقی حتی در این مجموعه 20 جل سنگ دست تمام فقیهان و علما بعد از خود مرحوم شیخور اما یه چیزهایی باقی مونده از کاریشان. اومده یه 200 سالی گذشته بعد از ایشان یه بزرگی در نجف قد علم کرده است یه بزرگی ایرانی تبار شیخور آملی از جبل آمل لبنانه اما این مرد از خطه شمال خراسان است آمده از مرحوم محدث نوری محدث نوری اومده هرچرا که شیخور ننوشته تو همون ابواب و موضوعات جمع کرده اسم این شده مستدرک مستدرک و وسایل شیعه یعنی هر چی در وسایل نیست اینجا پیدا کنید حالا اگر کسی وسایل و مستدرک رو بذاره کنار دستش دیگه چی میشه گل بود به سبزه نیز آراسته شد یه مجموعه کامل در اختیار داره خیلی ها اومدن مستدرک نهجل بلاغه یعنی اومدن اونا که سید از آن گذشته است ننوشته است قافل شد حتی تا زمان ما که وقتی معرفی کردم خدمت دوستان اون آلو جلیلالقدر بزرگواره که نزیل لبنان هستند و در سور و سیدا زندگی می ایرانی تبار ایشان اومدن تمام و جل بلاغه رو هفت حف جن تمام و نهج البلاغه رو نوشتن که این موارد در اون دیده میشه امیرالمومنین این گونه بنابر نقل سید الحمد لله الذي لبس العز والكبرياء هم دسان است که لبس پوشید العز والكبرياء را یعنی جامعه عز و کبریا را خداوند برتن کرد خب می‌دونیم این تعبیر تعبیر چیه تعبیر استعاری و مجازی است دیگه ذات باری تعالی که جامه بدن نمی‌کند این همان است که شما میگید عجب لباس ضلتی فلانی به تن دارد عجب اصلا شرافت لباسی است که شایسته قامت فلانی است شجاعت لباسی است که شایسته و برازنده فلانی است یعنی دقیقا این روما ما به عنوان یک عبارت استعاری و مجازی به کار می بریم که اوج زیبایی اون رو در کلام امیر مشاهده می کنید همد از آن هون خداوندیست که جامعه از و کبریایی بر او و برازنده یوست است از یعنی چه؟ از یعنی اون قلبه ای که ممتنه از شکست است یعنی القالب لذی یمتنو ان المقلوبیه از اون قلبه بدون شکست عزیز اون پیروز و قالبی که هیچ شکستی در کار او وجود ندارد و هیچگاه مغلوبیت در کار او دیده نمی اون زفرمندی خیلی خوبه به فارسی رو بگم اون زفرمندی پایدار میشه عز و اون زفرمند پایدار میشه شه عزیز. عزیز و همین خاطر انسان ها خیلی مایلند که عز داشته باشند خیلی مایلند که چنین جایگاهی رو داشته باشند لذا به بزرگانشون گاه چه میگویند؟ میگویند ایو هلا عزیز مثلا و از زور عزیز میگن یعنی خود عنوان عزیز به بزرگان به خیلی ها این عنوان عزیز گفته میشده است فرمود لب سن عز وملكبریا حمد از آن و آن است که تمام عزت و شرافت و ظفرمندی جامعه بر تن و کبریا و جامعه کبریا کبریا از ماده کبر بزرگی مناعت از خردی حمد از آن و آن است که عزت و کبریایی فقط جامعه برازنده اوست خب من این جمله رو بگم و بعد نکته دقیق اینجا لازمه بگم وقتاره مال نفسه و خداوند عزت و کبریایی را فقط برای خود برگزیده است وقتها مال نفسه دون خلقه ماورای خلقش هیچ کدام از خلق خوب دقت بفرمایید با کمال سراحت روشنی و وضوح امیر می‌فرمایند جامع رز و کبریایی برازنده خلق نیست مخلوقات در صدر اونها انسان عز و کبریایی و کبر جامعی نیست که بتواند بتن کند و جعله ما همن من همینجا میگذرم و یه توضیح بدم بعد ادامه بحث رو مطرح کنم ببینید وجود ذات باری تعالی از ذات اوست این همون تعبیری که حالا اصطلاح بالاخره معقول اهل معقول ذات حق را واجب الوجود می‌دانند اما بذارید قرآنی بگم خدمت دوستان سوره مبارکه فاتر می می‌خونید این آیه زیبا و سنگین که سرمنشه تمام معارف الهییه میشه اگر متوجه باشیم این رو یا یوحناث انتمุล ثقرا و الله، والله هو الغنی الحمید مردم آورتون بشه بدانید شما فقراء علالله اید یعنی فقر تویی دستی خالی بودن نیستی در عین ذات شماست شما از نیستی به هستی آمده اید حل اتا علن انسان حین منت دهر لمیکن شیعن مذکورا شما از لمیکن کان شدید خانه شدید به وجود آمدید نیستی و فقر در ذات شماست اما این نیستی و فقر شما از کجا پر می شود خالی بودن شما توهی بودنتون به نسب تبدیل پری میشه شود انتمال فقران و والله و الغنی الحمید از حضرت غنی ذات باری تعالی قنا در ذات اوست یعنی تمام صفات الهی عین ذات الهی است لذا به ما امیرالمومنین میفماد در همین نهج البلاغه من وصفه فقط فنا اگر کسی وصف خدا و صفات خدا را از ذات خدا جدا کند شرک قائل شده شریک بر خداها علم شده است چون صفات خدا این ذات الهی است پس علم خداوند این ذات خدا قدرت خداوند این ذات الهی در تمام ذات او صفات جلال و جمال الهی یه نهفته است این قناع در ذات اوست و این هم با این وید که همیشه گفتیم در تفسیر و در مباحث نهجل بلاقه که صفات خداوند که در ذات الهی است نوع صفات الهی چنون صفاتیه؟ مطلق یعنی حد و حسری برای جمال و کمال نیست علم الهی اندازه ندارد قدرت الهی مرز نداره پس خداوند دارای صفات مطلقی است که همه در ذات اوست اما ماورای خداوند صدر تمام موجودات انسان را بفرمایید حالا با یه قطع کم و زیاد اما این انسان که هیچ صفتی از ذات خدا آدمی نمی جوشد و در ذات انسان وجود ندارد تمام صفات عارض بر ذات ما میشه پس ما ماهیت و اولا چیم؟ توهیم خالیم فقیریم اگر متصل شدیم به حضرت غنی اونگاه چی میشیم؟ قنی میشیم یعنی قناع به نسبه میاد دارای صفات میشیم اگر متصل به حضرت علیم شدیم علم می آید متصل به حضرت حکیم شدیم حکمت میاد. متصل به حضرت قدیر شدیم قوت میاد. آید متصل به حضرت لطیف شدیم لطف میاد. از اون ذات غنی و سرمنشأ صفات میاد تو وجود ما وارد میشه پس بنابراین ما در ذات خودمون نداریم دارنده نیستیم فقیریم در ذات ما عز وجود نداره در ذات ما کبر وجود نداره یعنی اقلا ممکن نیست وجود داشته باشه چون ما چیم؟ فقر رو داریم یه ای داریم در فلسفه قاعده یه فقر و امکان ما اون فقر رو داریم در ذات خودمون ما فقر امکانی داریم در ذات خودمون اما ذات باری تالا قناع به ذات دارد نمیشه هم یه جمعه کویتاه میگم سنگین نباشه براتون نمیشه و اقلا تصور کرد که خداوند قنا و کبریانیش مطلق نباشه و با دیگران شریک باشه چون اگر این تصور بیاد یعنی خدا یه چیزی در وجودش کم دارد و این برای ذات باری حالا متصور نیست برای حضرت جل علا خب پس بنابراین این امیرالمومنین خیلی این رو به, زیب... به زبان زیبایی که عموم هم بفهمند مطرح کرد خدا لباس از و کبریا را فقط بر تن خیش کرده است و دون خلق هیچ کدام از خلق این جامه را ندارند حالا برای اینکه باز این رو ملموز تر کنه چقدر زیبا می‌فرماید صلی الله علیه یا اب الحسن یا امیرالمومنین عمیق‌ترین و رشیق‌ترین دقت‌های الهیه‌ی عرشییه‌رو امین المومنین به زیبایی عدیبانه در قالبهایی میگوید که مخاطبان او هم با همه ستوه متوجه بشن حالا اونها که امیختر میفهمن برن به اعماق کلام و جعله ما خمن و من علا غیره و خداوند این که و ازرا همن و من علا غیره حما قرار داده است هما حما و همیه به معنای جلوگیری و من اول معنای لغویش جلوگیری و من چی رو جلوش گرفتن بستنی محدوده ای رو. به همین خاطر هما در لغت عرب به قروقگاه گفته میشه قروقگاه از همین کلمه الان توضیح میدم این رو. همیه یه جمله ای رو یه وقتی گفتیم که بالاخره یه طبیب نصرانی اومد تو جامعه اون روز اومد تو پایتخت خلافت اسلام در زمان هارون رشید بود منتظر بود و بلاخره خیلی مشتری نداشت مطبش مراجعه نمی خیلی مردمان سوال کرد که اینها چرا کم مراجعه میکنن به طبی ما طبقه داشتیم اینجا بازارمون تیستر و داختر باشد اما خیلی مراجعه ما زیاد نیست گفتن اینها چند تا توصیه رو مسلمان ها جدی میگیرن عمل میکنند یکی این که اینها مقیدن که انشالله همین طور هم باشن مسلمانان. ها در یه زمانی بودن ان گفت که اینها در کتابشون مسلمانان پاسخ دادن به این طبیب نسرانی دستوری دارن که اون دستور رو خیلی جدی میگیرن و اون این از کل و شربو و لا تصرفو اینا اول از مبادی خوردن سلامتشون دو شروع میکنن از بهداشت تغذیه سلامت تغذیه کل و شربو رو گفته از خداوند و لا تصرفو به دنبال اون نظام مرضوحد رو رایت میکنن مشکلی براشون پیش نمیاد گفت خوب آیا توصیه دیگری هم از پیامبرتون بگید که من بدانم گفتم رسول خدا وجود نازلین محمد مصطفی فرموده است: المعدت و بیت و کل دائن و الحمیت و و کل دوائن او بدن کما اعت ما پیانبر فرموده است که این معده سرمنشه خیلی از بیماری هاست حمیه یعنی معن اونی که از آن امروز تحبیره به چی می پرهیز، رژیم غذایی همیه رأس و کل بهترین داروهاست و به بدن چیزی را بده که بدن تو عادت به آن دارد و توانایی از مجزبان رو دارد نه غیر از اون با همون روش معقول بدن هر کسی روش بدن رو دارد با همین روش عمل کن این طبیب نسانی گفت و الله ما بقیه کتاب کن و لا نبی کن لجالی نوسشی دیگه با این دو توصیه که کتاب و پیان برای شما گفته است من فکر میکنم باید وساط طب جالی نوسی خودم رو جمع کنم نمیتوانم کاری بکنم این همیه به معنی جلوگیری و معنیم هما از همین ما درس کردم گروه یعنی درست بود در منطقه ای رو این مثلا علفچر این منطقه رو چرا این منطقه رو چه کار میکردن؟ ما بودم کسی بود خانی بود امیری بود وزیری بود <تصفح> گاهی برای سلطان خبی زیباست اجزه بدید این رو بگم در این کلام امیر المومنین ولو تکرار باشد این سخن از من در یه جایی دیگری از این لکل ملک نحما هر پادشاهی و سلطانی یه منطقهی رو قرغ میکند برای اقنام و احشام خودش کسی عقل نداره پاشه اینجا بگذاره؟ لکل ملک نحما اگر نزدیک بشه احشام دیگران پاش غلم میکنند لکل ملک نحما یعنی قرغگاه بعد حضرت فهمتن المعاسی الله معسیت ها قرغگاه خداست مراقب باشید اگر کسی نزدیک قروهگاه شد ممکن پاش اون سو بیاید و اندرون برود نزدیک نشید شما، پس اجتناب معصیت کنید نه ترک معصیت اجتناب معصیت غیر ترک معصیته اجتناب میشه این یعنی جهتگذاری و هدفگذاریتون جوری باشه که نکشید به اونجا کارتون که وارد قروهگاه بشید امیر المؤمنین فرمود در اینجا و جعل هما حمن به خداوند عزت و کبریایی را قرقگاه خودش قرار داده است و حرمن علا غیره و حرمن علا غیره حرمن سمون ماده میاد که چه می آید؟ حرام می آید به زنان حرمه گفته میشه در کلام عرب به دلیل و اون مناعتی که زن دارد زن مسلمان اون مناعت و خیشتنداری نفسانی که دارد حرمه گفته میشه به اینها حرام به معنای ممنوع اینجا هم حرمان حرم به معنای جایی که در آن من وجود دارد فرمود و حرمان علاقه ایره و اینها را ممنوع بر غیر قرار داده است و از تفاهمال جلاله خداوند از و کبریا را مخصوص حضرت زلجلال خود کرده است اینها از آن جلال و جمال و سطوت خداوندی است خب تا اینجا فرمود دیگه یک بار حضرت دست رو باز می کنند. و جعل اللعنت علا من نازعه فی من عباده الله هجبر و قرار داد خداوند لعنت را یعنی دوری از رحمت را بعد از رحمت را و جعل اللعنت علا من نازعه فيهما من عباده پناه به خدا می بریم عزیزان. و خداوند قرار داد لعنت را بر کسی که نازعه بر کسی که منازعه با خدا می کند در عز و کبریایی از بندگانش یعنی هر کسی که به سوی از و کبریایی به سوی اون تکبر و عزت اون پیروز بودن کامل مطلق و به سوی اون برتری کامل می رود و چنین حسه دروقینی چرا؟ چون الان گفتیم خدمتتون انسان اگر تصور کند که دارد اون فوقیت و هقارت دیگر رو ببیند این چیزی جز توهم نیست چرا؟ چون انسان موجودیه که هر چی داشته باشه باز نقص داره باز توهیست، باز خالیست فوق کل رضی علم هر هرچه ما بالا بریم وقتی میرسد رسد با اون جا که به جایی می که انده صدرت المنتها انده ها جنت المعوی میرسد با اون منتهای کار ولقد را من آیات ربه الكبره می بیند نهان خانه غیب الهی را چون سید و سالار پیانبران الهی اما باز هم بهش میگن و قول رب زدنی علمه بگو خدای آشغم آشغترم عاشق کن خدای ما رو بکش بالاتر هنوز جای توهی داریم هنوز زدنی علما ولو اینکه که سید المرسلین باشد توجه دارید؟ یعنی انسان ذات وجودی انسان اقتضاق کبریایی ندارد لذا اگر کسی این حس رو بکنه این توهم تخیل دروغ است که میترکد و شخصیت واقعی انسان دیده میشه توجه دارید؟ لذا فرمود؟ و جعل لنت عللا من نازعونفی و مع باده خب از اینجا دیگه اون جان مطلب را ازت تو خود به شروع میکنم صبح مختطب بذاله که ملکت هو مغرربین من همینجا بگم که این خود به نوی از اون کلمات حضررتتی که بعض از تصورات ذهنی شما از ایزان رو فرو می ریزد آمادگی رو داشته باش بعد از باورهای پیشینی شما با این خطبه ایمان بود بشکنه. حالا آره چیه مراد؟ الان می‌رسیم. این هموناییه که گاهی ما تو تفاصيل می‌گی مسئله برانگیزم میشه. در مورد شیطان یا در بحث شیطان‌شناسی گفتیم در اون مجموعه در پرتو آیات و قرآن که برای بعضی ها سوال میشه. خوب دقت بفرمایید. فرمود سمه سپس اختبر بذالک ملائکة المقربین. خداوند اختبار کرد با همین مسئله. یا همین با همین مسئله کبر و از کبریایی و از ملائکه مقربش را اختبر اختبار در لغت یعنی طلب الخبر و المعرفه من نفس شیء. وقتی شما یک خبری را و اطلاعی را و شناختی را از درون یه شیعی میخوان به دست بیارید نام این میشه چی؟ میشه اختبار نمی دانید درون این هندوانه چه خبر است نمی دانید درون این پسته سرپسته چه خبر است باد یه کاری بکنید که مطلعه بشید این اطلاع شدن میشه اختبار آیا خداون پسته سرپسته ای هست که درون آن را نداند آیا ذات باری تعالی برای حضرت باری تعالی هندوانه این درون بسته ای است که ندونه چه خبره؟ ذات هر چیزی هست که نداند لا یخ فعال الله خافیه بر خداوند چیزی که وجود نداره که پنهان باشه به کل علیم اما این فعل به خدا نسبت داده شده بعد ما هم تو فارسین چی معنام میکنیم دوستان ما میگن اختبرم میگیم آزمون امتحان معنا کنیم. خب بعد میگیم آزمون آ بالاخره ما نمیدانیم این میخوایم این جماعت رو مثلا نمیدانم آزمون دستیاری پزشکی بگیریم 176 هزار نفر میان می که حالا این پزشکان عمومی کدومشون میتونن بیان برای تخصص اون آمادگی دو دارن قابلیت رو دارن انتخابشون کنیم با ظرفیت دانشگاهمون خب ما خبر نداریم لذا اعتبار می اما ذات باری تعالی که خبر دارد خداوند که نیاز به آزمون نداره کلمه اختبار در مورد ذات باری تالا آزمونی که ذات حق به عمل می آورد هیچ دخلی به خداوند ندارد بلکه نتیجه این آزمون برای کسی است که آزمون شونده است یعنی برای اون کسی که مختبره نه نه خدایی که بخواد خبردار بشود برای اون کسی که خود موجود خود اون آزمون شونده رو بداند من در این حد و ملاک بودم که برم یه رتبه بالا یا نه خودمو شناختم با این آزمون و با این وضعیت لذا زیبایی کار ادبی اینه که در علم کلام هم میگیم یا عامل و معهم معاملات المختبر خدا مثل این که یه کسی میخواد آزمون کنه به کرامت و عظمتش میاد عمل میکنه که انسان موجودات وضعیت خودشون رو بدونن براشون رو چند باشد حالا نکته عجیب اینه تا الان ذهنیت بسیاری از خانوم ها وایون اینه که فرشتگان الهی ملائکت الله موجوداتی هستند که محض عقلا اختیار و انتخاب در کارشون نیست نمی توانند به مقتضایی غیر عقل عمل کنند در مورد اینها امتحان معنی نداره اصلا یعنی فرشتگانی که محض عقلند و او است و ندارند جسجود نیست اندر انصرش غیر خدا نور مطلب آری از هر و هوا به تعبیر مولوی اگر فرشتگان اینچنین موجوداتی پس دیگه تو فرشتها اختبار و امتحان معنی نادرت اما امیرالمومنین میفهمد خداوند اختبار کرد ملائکه مقربش رو فرشتگان را ملائکه مقربه را لی میزل متوازیین منهم من المستکبرین تا تمیز داده شوند فرشتگان ملائکه متوازی از ملائکه متکبر تکبر خطا یا نه بله از کی سر میزند به فتواهای امیرالمومنین از فرشته تمام اون ذهنیت قبلی رو بریزید کنار یعنی چی؟ بنامه اون چه امیر المؤمنین از متن این خود داره میگد و ادامه میدیم امروز فردا فردا خدمت دوستان در چند بحث مفصل این گفته میشه یعنی که در میان فرشتگان ما یه متکبر میبینیم که نه متکبر بلکه امام المتکبرین حضرت اسمشو میگذاره پس این ذهنیت که ما تصور کنیم فرشتگان همه پاک و پاکیزه اند این نیست فرشتگان رتبه دارند درجه دارند و ما مننا الا لهمقامون معلوم اینها مراتب متفاوت دارند بعضی ها در یه اوجی بعضی ها در اون اوج نیستند بعضی ها اختیار دارند طبق سخن امیر لذا اختبار میشن، آزمون میشن. بعضی ها اختبار ندارن امتحان ندارند از فرشتگان الهی پس آب با این ذهنیت رو عوض کنیم. این معنای که ذهنمون هست بود این رو تجده نظر کنیم. صبح مختبر رو به زاردهکه مللااق تتحول مغرربین. ی یمی از متواظعین من هم من مستکبرین تا خداون تمیز بد و جدا کند ملائکه متواضع را از ملائکه مستکبر فقال صبحانه گفت خداون سبحانه او. و هول هو آلم و به مزمرات القلوب و محجوبات القیوب اینی خالقون بشرن منتین اینی خالقون بشرن منتین و گفت فقال سبحانهو دوستان عبارت دستشون هستی نگاهی بکنید فقال سبحانهو چی گفت؟ گفت اینی خالقون بشرن منتین اما بین این قال سبحانهو فائل و مقول این قول امیرالمومنین fmt و هو علمو به مزمرات القلوب و محجوبات الغلوب. یه جمله صفت خدا رو میگه اسم این میشه حشف ملیه یعنی چه خوش گفت فردوسی پاکزاد زاد می یازار مریه دانه است که جان دارد و جان شیرین خوش است میگید آ معلمی قتش انداختی همین طوره. چه خوش گفت فردوسی پاکزاد فردوسی پاکزاد چیز دیگه نگفت این گفت من موری که دانه کش است که جان دارد و جانشیری خوش است مطلب تموم دیگه نبوده سعدی بیش از این میگفت اما میگه چه خوش گفت فردوسی پاکزاد چه رحمت بران آن تربت پاکباد می موری که دانه هست این که رحمت بر آن پاکباد مال کیه مال سعدیه نه مال فردوسی یه دعاییه که به دلیل آمدن نامش برای او میفرستند این هش یعنی میشد نباشه اما میاد کلام را زیبا می کند امیر المومنین میفهمد. فهمد قال سبحانون خداون گفت مطلب خ... ذات باری را میاد اما بینش می و همون آلم و به مزمرات القلوب خدا عالم است به اونچه نهان در جان هاست در وجود موجودات هست و محجوبات القیوب به خدا به هرچه در هجاب غیب است آشناست آگاه است. پس بنابراین این رو برای اختبار خود موجودات گفت نه برای علم خودش چی گفت اینی خالقون بشرن منتین به چی گفت به مدعای که. که من من پروردگار بنا دارم بشری رو از تین و جل بیافرینم چون بحث جسم انسان لذا کلمه چی میاد بشر میاد نمیگه خالقون انسانن خالقون بشرن منتین سبیت او و نفخت و فی من روحی فقط اوله ساجدین. هنگامی که این رو من او کاملا همه چیزش رو در جای خودش قرار دادم معتدلش کردم جسمش رو ساختم نفخت و فی من روحی از روحی که متعلق به منه از آن من است. در این دمیدم نفخت و فی من روحی نه این بارها گفتیم نه که خدا یه پاره از روح خودش رو برداره بده به انسان چون روح انسان چیه مانند جسمش مخلوق. روح خدا که مخلوق نیست خدا به معنای روح ما که روح ندارد یعنی روحی که امر اون ازن اون از کیست قوله روح من امر ربی این روح رو در وجود این انسان قرار دادین حالا اون شرافت رو پیدا کرد فقعو لهون ساجدین حالا به پای اون به سجده درفتین در ادامه میده تازد آیه رو میفرماند فسجد الملائکت و کلهم اجمعون الا ابلیس. به دستور خداوند ملائک همه سجده خودشون رو انجام دادن الا ابلیس ابلیس سجده نکرد ارت هرزت هل همیه ففتخر علا آدمه به خلقه و تعصبه علیه لسله فعدو الله، امام المتعصبین آج میدد سخن رو امیر المؤمنین ریشه ها بی میکند، واکاوی میکند، حقایقی رو بازگو می کند چه اینها رو ما کمتر جایی به این زیبایی و به این فضوح و روشنی داریم برای نوز نخستین و جلسه اول کفایت میکنه انشاءالله ادامه بحث رو همین گونه خدمت دوستان عزیز در این خطبه اگران سنگ فردا پیگیری میکنیم و مطرح